چه حتت دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر اگه هوادار چه چون بلدی بخندی و چشم دل ببوسو واه چه دل ببندین بسم که دل به پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا اجواک قلب سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا, فردا. سلام حالتون چطوره خوبین برنامه 999 آ شدیم 999 ترکوندیم امروز خیلی برنامه مهمیه چرا که آخرین برنامه رادیو پس پسورداست و از فردا راژیو پسوردا برای اولین بار و آخرین بار چهار رقمی میشه و بعدش دیگه رفتیم که رفتیم, رفتیم. زرد دل کهی دیگر بینی نشان رفتم که رفتم حالا بابا رفتم که رفتم. رفتم بیا بله رفتم که رفتم رفتم که كه... چرای قطع بکنیسن دارو؟ یعنی چی؟ رفتم که رفتم, رفتم دیگه که رفتم حالا رفتم که رفتم حالا فدا سرتون که رفتم. حالا مگه چه گلی زدیم به سرتون که رفتم برفتم می میکنم خوبی؟ خودتون چه خبر را؟ سلامتین امروز در برنامه سرنوشت ساز 999 میخواییم با هم در مورد پایانهای شیرین و دوست داشتنی صحبت کنیم اون پایانهایی که وقتی میرسن آدم تو دلش میخواد داد بزنه که آخیش تموم شد البته دوره از جنو برنامه خودمون ها پس همین افتدای برنامه یک سلام مخصوص داریم خدمت همه اون کارت پایان خدمت گرفته ها و به پایان دوره حبس رسیده ها و از دانشگاه فارغ و تحصیل شده هایی که میفهمن وقتی ما از شیرینی پایان داریم صحبت میکنیم دقیقا داریم از چی صحبت میکنیم و حرف میزنیم پس سامی شهرام برو بریم که رسیدیم 999 دیگه اصلا وقت چه که باید میشه قلبم تفشش تون تر بشه روز آشنایی با شما سبز پاک کردن اون ظهر مامانم و بابا که داشت چای میخورد و من کنترل رو کش کشرفته بودم و هممون مبهوت صدای دلنشنه تو شده بود. وقتی میگفتیم امروز سردا شایدم پس سردا حس میکردم که من باید با عرضوان برسم شنونده پروفا خورس و همیشگی شما پریده خیلی ممنونم فرید خانوم لطف کردین رویاهاتو از دست نده ان همیشه به با همه با آرزوهاشون برسن شما هم همینطور سلام به خانواده برسونید خب دیگه از این رفتم چه رفتم این شو بین چلوغ بازی ها مسخر ها اینا ولش کن دیگه اینا رو تموم کنیم بریم سراغ خبرها و کارهای خودمون دوستان خانم ها آقایون دختر خانم ها آقای پسرا عزیزان مخاطبان شنوندگان پس فرداها همه با هم الان خیلی سال ما هر روز داریم از ضرورت خصوصی سازی میشنوفیم خصوصی سازی یعنی چی یعنی شرکت های بزرگ دولتی رو بدن دست بخش خصوصی دو روز پیش آقای طیب نیا وزیر اقتصاد تو یک نشستی از موانع و مشکلاتی صحبت کرد که تا مانعه چون این کاری یعنی همین خصوصی سازی شده. گوش کنیم لطفا مدیرای دولتی مایل نیستن. من اینو به سرعحت میگم از بذارت خودمون بگم ما که خب شرکت کم داریم مستقیم ولی چند تا که داریم میخوایم واگذار کنیم مدیرای وضعت خوونه معوافق نیست. از بالا تا پایین چرا از سفر بگیر پولش بگیر هزینه کردن کذا کذا حقوق های تو عضوت مدیره 5 تا 6 تا ه شرکت همزمان شدن از هر کدومشون؟ میلیون ها پول گرفتن بله. ببخشید این حرفاش رو از زدنش خیلی خوب نباشه. بله خب مدیرای شرکت‌های دولتی حق دارن بندهای خدافه کن رو کاغذ از و حیط مدیره پنشیش تا شرکت باشی از هر کدوم این شرکت ها هم حقوقای آنچنانی بگیری و بدون استرس و نگرانی که مثلا شرکت سوده باشه یا زیانده با پول دولت برای خود درنگ و بارا این سفر بری بریز پاش کنی اشخال کنی خب اینا واقعا چیزی نیست که کسی دلش بخواد و حال دلش بیاد یا دلش بخواد بیخیالش بشی یعنی آقلانه نیست که این همه ممر و یهو بدن به لولو یا همون بخش خصوصی ببره الگوش کنین بقیه‌شو یک سال و هش ماه نه ماه ما یه دونه معدن رو فروختیم فروختیم مزایده گذاشتیم فروختیم پولشو به حساب دولت ریخته چی خریده شرکت فولاد خریده یعنی اونی که نیازمنده به این محسوله به من هنوز اجازه ندادن این تحویلش بده قرار بشه اون روش قبلی رو ادامه بدم رد ده اینو تهاتور همین دو ماه پیش یه جلسه سنگینی داشت ترجیح میدم وزیر نباشه بله اینه که لقمه هر چی چربتر و گنده تر باشه دلکندن ازش هم اینجوری سختر میشه جوری شده که آقای وزیر هم تهدید به کنارگیری کرده فکر کن بخش دولتی مدن و فروخته پولش هم گرفته اما هنوز یه از مدیراتالشون نمیاد واگذارش کنن به خریدار و آقای وزیر میگه هنوز اجازه واگذاری ندادن حالا اینا که اجازه واگذاری ندادن چی انو چی انو کجای این سیستم اقتصادی نشستن که اجازتشون اگه نباشه آقای وزیرم نمیتونه کاری بکنه رو دیگه ما نمیدونیم شما میدونین به ما هم شنبه شب شن میاد و وقت رفتن حرفی ندارییم ما برای از چی که بود و به بین ما تموم شد. اینجا برات نیستی که جای موندن تو از زندگی ما. بیرون. یادت باشه خونه ما کردی بیرون خونم رو کردی بیرون یادت باشه خونم رو کردی بیرون خونم رو کردی بیرون بشتو انافی این مخصوص تو چره تم ستید دم اومد وقت حرفی نداری ما برای بود بر... من نموتم فوشا اینجا برام نیستی جای مونده من میرم از زندگی, زندگی تو بیرون یادت باشه خونمو کردی ویرون خونمو کرد ویرون من میرم از زندگی تو بیرون سعید یادت باشه خونمو کردی بیرون ترسیب نرو سعید <تصفيق> نه من میرم. نبلم فرشید این کارو با ما نکن. بلم من دارم میرم سعید. نمیذارم. تو خدا بزنم نمیشه. از آب و هوا بگو چه خبر از آب و هوا؟ والا فرشید بعد خدمتشن روندای عزیز عرض کنم که ظاهرا داریم با خطر بازگشت نن سرما خصوصا تو غرب کشور مواجه میشیم. چون پیش شده که از آخر وقت چهارشنبه برف توی آذربایجان شرقی و غربی میماره میباره. ولم تا 20 سانتی تو بعضی جاها و 10 سانتی تو بعضی جای دیگه اوه. اینه که من به عنوان مسئول هواشناسی برنامه ترجیح میدم زودتر برم مذاکرات مذاکراتمو با بنان سرما شروع کنم شاید ایشون تو وخص نظرش عوض بشه این شبهه دیگه حداقل با... انقدر عصبانی و بی‌عصاب برخورد نکنه با ما حالا میگم دیگه. ولش کن میگم سعید جان دی برنامه تموم شد دیگه برنامه 999 فردا هم تمومه دیگه مردم خودشون با سرما گرمون میسازن یه جوری اینم حرفی البته راست میگی امروز میشه یه جورایی برنامه آخره دیگه درسته. برنامه آخر که البته فرداست ولی خوب امروز از لحاظ نمیدونم مثلا بگیم شکل و فرم پاسوردی اگه بخوایم حساب بکنیم دیگه آخرین برنامه است دیگه چون فردا دیگه میخوایم بریم بیشتر به بحث خاطره بازی پاسوردی و یکی یه ذره ویژه می‌خوایم برگزارش کنیم مهمون داریم و خلاصه برنامه های خود ویژه ویزه خب پس منم چون آخرین باره که برای خبرهای هواشناسی اوایل برنامه با شما ما رزون می‌کنم مخاطبین رادیو پاس اهل هر جای ایران یا هر جای دیگه دنیا آب و هوای خودشون و دلشون خوشحال و آفتابی و گرم باشه وقتشه وقتشه راستان وقتشه وقتشه از تو گذاشتان وقتشه مخلت تبلدست دوباره نیست مردنه دوباره این من وقتشه دیگه دیره با این کلام آخرینه فرصت ہے زج نہ مون با, با دشمن دل توی شاتت سرخ نفرت می چه داترین قریغا وقتش وقتش رفتن وقتش بریم سراغ پایان های شیرین بله پایان هایی بهتر از هر آغاز میانیه شماره 999 بدانید و آگاه باشید که یک پایان خوش درست مثل این قسمت انتهایی بستنی قیفی هست بله که در آن بستنی در حال آب شدن با نان قیف بستنی مخلوط شده و آدم اصلا بستنی رو که می‌خوره بستنی می‌خوره که به اونجا برسه اونه پس بر همه ماست که اگر در اول وسط و نزدیک به آخر هر چیز خوبی هستیم برای رسیدن به انتهای شیرینان صبر و تلاش کنیم وگرنه در غیر این صورت همه ما از ته بستنی نخورندگانیم امضا برای داشتن یک پایان شیرین از صحراها و دریاها و جنگلها و دهان شیرها و نیزه گلادیاتورها و حمله آدم خورها گذشته های راژیو هر بر خدا خدا خدا حافظ خدا حافظ عزیز لحظه های من خدا حافظ چی میخواستم بگم علونفرن یادم رفت آها سوال بگم دیگه روز بیشتر نمونده دیگه فردا فقط دیگه سوال کردیم ازتون سوالمون کاملا پسوردهای آخرین سال رادیو پسورداست و اون اینکه تو این آخرین روز از برنامه رادیو پسوردا که باقی مونده بهمون بگین تو این 6 سالی که با هم بودیم چه خاطراتی از ما برنامه رادیو پسفرده تو زهنتون مونده؟ کجای برنامه بیشتر خندیدین؟ و مثلا اگه ده سال دیگه یکی بهتون بگه رادیو پسفرده چی بیشتر از همه یادتون میفته؟ و مثلا اگه بخواهین توی یک جمله رادیو پسفرده رو برای کسی که هیچ وقت تا حالا برنامه گوش نداده توضیح بدین اون یه جمله چیه؟ رفته. منافی رفته بیا منافی بای بای منافی بای بای, بای, بای. اینه برای محمود هم خونده ایم. محمود نرفت <تصفح> برای تو هم میخونی فرشی جون به امیدی این که نری البته خیار نکنی یه وقت تو رو داریم با محمود مقایسته میکنی ما نه چما که سعادت نرشتی نه نه یه حوگو چاوز رو بغل کنی <تصفح> غیاس معل فارغه بای بای خیلی متشکرم از غیاس معل فارغتون دیگه رفتن میخوای آخه قیاس مال فارغ کنی خب مرد مؤمن آخه این همه آدم چرا اوس محمود قربون شکلت خیلی ممنونم والا اشکال نداره دیگه یه برنامه آخره خیلی ممنونه از خماتشون برشید عزیز از غم دوریت و از غم فراغت کمرها من خواهد شکر است زود برگرد زود زود زود جوان به من و جوان و شاد همچون این آهنگ پایان برنامه از اینجا آها فرق کرد آها آها آها آها آها آها آها آها خ <laughs> خیلی متشکرم بابا خود شما خوالتون یه پا پسورداری همتون ها یعنی یعنی عالی همتون عالی. ممنون از سماجتتون بریم سراغ کامنتا سارا و الی چه خبر از کامنتا؟ سلام علیکم فرش جان سلام علیکم والا این دو روزه که تو تاپ تاب تموم شدن برنامه است همیشه من داخل خیلی لایک کردم بیشتر از همیشه کامنت و مساج گذاشتم پر از مهرو و محبت کلی هم انرژی مثبت و خوب گرفتیم دمشون گرم بعضی جا هم خیلی ناراحت کننده بود دیگه بغض کردیم باهشون الان بغض داری تو؟ واقعا من این دو روزه خیلی <تصح> آخه بعلام بله نگفتی میبینم آره بله نگفتی بغض داری هم شاین کیانی آقا فرشید پیشب خوابت تو دیدم باه من ریش چار رای گیشا دنبال یا آدرس میگشتی ایشالله خیره گیشا من برد. خیلی ممنونم مم. خیلی آقای پیام روشنی نوشتن که من اما من میگم تا برنامه بعدی منافی رو نگهدار فرشیدو نشناختین هنوز همیشه تو آسنس یه چیزی داره شما رو شگفت زده کنه میگی نه یکم صبوری ما ایرانی ها حولیم فقط رفتم که رفتم بدونه م... هیچ چگف زدیگی مهرگان شایسته فرشید دارم تمرین میکنم نبودن تو خودم بستم به سندلی خبرارو رو که تو تلتیفشون کنی میشنوم <تصفيق> نمیشه خیلی سخته خو... خانم مریم تبریزی برای اون کامنت گذاشته بودن که من تا زنده یادم هست که عجب صدایی داشتین پسر به قول پرویز سیاد که میگفت مردها هم لوندی خودشون رو دارن فارشی جان سلام خیلی خیلی صدای لوند مردونه ای داری فکر کنم دیگه تکرار نشه امیدوارم جور دیگه ای آوای تو رو بشنوه لوند کجا میری جونم جونم <تصفح> به من گفتا با من بود لوندو <تصفح> لوندی می‌کنی <تصفح> موام ندارم خودم با موام لوندی کنم با موهای مرسا لوندی کنم <تصفح> تو از طرف من یه لوندی بکن مرسا جان یه مو بیا <تصفيق> <تصفح> نیروانا گفتن جادر اینجا که یادی بکنیم از آقای سیاوش که با صدای گرمش شعرشو می‌خوند آقای سیاب ها درست یه یادی از آقای سی8 دقیقا که شعر میخون برامون دستشون درد نکنه. و آقای سمجر. رسول ویلیام نوشته بودن که رادیو پسوردا مثل یه پیک خسگی بود وقتی از زندگی سیر بودیم وقتی زورمون به جبر زمانه و جبر جغرافیان نمیرسید رادیو پسوردار رو سر میکشیدین تا غم هامون رو به شور ببره پایین. رادیو پسوردا ما رو شنگول می کرد و اوجن و تلخی روزگاه. فرشید سخت... فرشی سختی سختی‌های زندگی توی ایران و غربت رو گره می‌زده. سوتی آه ماغت‌های سران حکومت تا ما کمی بخندیم. خندیدیم فرشید جان دمت گرم داداش ولی خماری که بعد از پریدن اثر آرغسگی به جا میمونه با سه تا هم رفت نمیشه. امیدوارم یه روز صداتو تو رادیو جوان از تهران بشنوم امیدوارم با یه بغز و یه خماری سنگین سلامتی بابا چه گریه کنم خدا یه پچ اقسگیه که بیاره بخوریم حالا که برستش شد و امضاهامون آقای رزا ناصریان از ایتالیا بینامونشان از لاسوگا سانازی از ارومیه جنگلبان از جنگل محسن و مثلا از تهران دو دختر سامی از بلاد فرانس دختر آرش... سامی امضا میکنه آرش فرشید جون مادرت نرو از اهواز. نامد بعد پنج سال اسم منو بخون بابای حسی از خورم آباد خوندیم دیگه بعد پنج سالم دیگه سارا جان دا کشیدن بله بله و راه های ارتباطی من دوبار بله گفتم چون نگفته بدم <تصفح> <تصفح> راه های ارتباطی با برنامه تلفان ها از دو چار سد و بیس بیست دو دو یازده بیست و چهارصد سد و سیاسه دو 420 <تصفح> بوز دارم دیگه نمیشه <تصفح> دو420 و دو و تلگرام ما هست <@passenagram> و ایستاگرام و فیسبوک ما هم هست رادیو پس که میتونم شنوند عزیز برامون کامنت بذارن صدا بفرستن عکس بفرستن و ما پیگیری میکنیم ممنونیم ازتون دیگه یه روز بیشتر نمونده همین امروز تا فردا فقط پیگیری آره میکنیم دیگه, دیگه پیگیری نیستیم دیگه پیگی... پس زنی بزنن دیگه از بعدش دیگه همین امروز فردا فقط زنی بزنیم <تصفح> قربون شما <تصفح> هلا هلا همه با هم همه بیا جونم امم امم امم یکی از شیرین ترین پایان ها که ای خانم مدلشون نخواد فقط و فقط آقایون تجربه میکنن شیرینی پایان خدمته یعنی اون لحظه ای که اون کارت پایان خدمت رو میدن دست، آخ آخ, آخ, آخ, آخ, آخ, آخ اون لحظه که این کارت پر رو میگیری، آخ آخ آخ. آخ حالا چهام قدمی میادش که پریس شده بود. این که الان دیگه حشمن شده استی شبی کارت آبرون که آقا فقط باید دور پادگان پامارگی رفته باشی، بالای برجک نگهبانی پست داده باشی، و واسه یه روز مرخصی به هر کس و ناکسی رو انداخته باشی که بفهمی لمس کردن اون کارت پایان خدمات لعنتی چه لذتی داره. یعنی ببین اون لحظه اون لحظه فقط می‌خوای بری تو اتاق فرماندت که حدود دو سال تمام همیشه بدزور گفته و برات اضافه خدمت رد کرده بری و این کارت پایان خدمتت رو نشونش بدی و بگی جناب سرهنگ حالا بیا اینو بخور و جعبه شیرینی پایان خدمتت رو بذاری روی میز و درش رو باز کنی و دهنتونو به اتفاق شیرین کنی اینا آره با خوب سه آدم کینه شطوری باشه فرمانده خودش آدم چیزی به دل بگیره خوب نیست دیگه آره دیگه بالاخره نیم نظام سخرگیرای خاص خودشو داره ولی حتما اگه جابشینی برای فرمانده میبریم باید چند تا جبه هم بگیریم برای هم یا ببریم تو آسایشگاه بریم و بخش کنیم آفرین اصلا خیلی خوبه این پایان خدمت یعنی هر چی بگم من کم گفتم عزیزا آی و آی و آی و میگم بازی خوبه. میگم مزورگ میشی. بعد زن میگیری. آدم مزورگ میشی. بعد زندگی میشی. حالا خم صدم میگم. افتادم سر بازی. افتادم سر بازی. افتادم سر بازی. بازی تو خدمت مادر نمی شوزه اینو ببینی زر بازی صدای طبل شیفور شنیدم زر بازی مادر دلنبر از یه ذره شده زر بازی دست روته خیلی خشمی زر بازی تو خدمت یه کمی آدم میآویر بازی اما اما آوالا ما ده کار میشی آوالا ده میشی میشی میشی کار میشی آوالا خار بازی خوبه آوالا خلاص تجربه آوالا تجربه تجربه اینجوریه رادیو پاسوردم یه جورای سربازی بود یعنی 6 سال ما سربازی رفتیم علی الان پایان خوششه واقعا. فرشید من آقا این مردونه جنی یعنی دو تا دونه برنامه بیشتر نمونده. سر کارمون وزشت بب... شوخی میکنید. چیه من با... با... واقعا باورم نمیشه. الان بحث بابا... همینه با این جمال ترکه. با بب... ب... شوخیمون چیه؟ جمال ترکه چیه؟ خیلی سلام برسون بهش. آقا انگار ما هر چی میگیم انگار شوخیه ها. خب بابا ج... من آخه به جان خودت به جان اون جمال ما فقط یه امروز رو داریم یه فردا رو یعنی به متقسم جون چی دروغ نمیگم ای بابا باور نمیکنه باز حالا ها ببین دیگه حالا وایدم چیکار کنم دیگه من نمیتونم دیگه جون کسی رو من بگی بلد نیستم دیگه بیشتر از این قسم بخورم آقا امروز 999 فردا برنامه 1000 و آخرین برنامه رادیو پس فردا است باور بفرمایید لطفا <تصفيق> پیش ما بیا بازم پیشما بیا حالا اگه تردار تموم میشه ولی بازم پیشما بیا فریبورز شیش ساله برم میام بدون که بینم <تصفيق> واقعا هنوز ندیدیم همدیگر. حالا فردا راجب این داستانه پس خیلی حرف میزنیم با هم رسیدیم به شماره ما قبل آخر فریبورز عزیز و پایان خوش ماجرا که امروز رجبش حرف میزنیم ببینیم چی داری برای امشب ما و ش رشید جان از مرد همیشه حاضر در تالار پسفضا تو این چند سال اخیر شروع کنم که به نظر میاد او هم با اون خنده هاش پایان خوشی تو فدراسیون داره آقای کفاشیان جالب دیشب تا دقیقه 90 همه رو گذاشته بود سر کار در مورد ثبت نام کردن در انتخابات فدراسیون به این صدا گوش بدین که استاد کفاشیان در داخل اتومبیل تو محاصره خبرنگارا چجوری همه رو اسیر حرفاش کرده بشنبیم. الان تو چیه؟ الان برام داخل دفتر داستان تصویب میکنید؟ میرین ثبت نام میکنید؟ الان چی ثبت نام میکنید. یه سادیو شما میگم. این بعد خبر نگارها رو یه دونه با بچا نشینید. الان میام چای میارم چاش. بنزه برام الان ببینم من چیکار میخوام میکنم. بعد گفتن که من میرم و به تقابل به نامادریش میسرم. چی گفته؟ وزیر اینا رو وزیر گفت من بخورم چهجوری؟ شلون نامادری فوتبالی چی؟ اون نامادریه. <تصفيق> <تصفيق> نه این اساسنامه نامادریه. البته هر چند البته ایشون هم کارنامه جالبی نداره توی فدراسیون ولی اگه بره دلمون برای نمکاش تنگ میشه دیگه. واسه بالاخره نامزد نشود. نامزد ریاست فدراسیون نشود فرشید. اما اسمش تو لیست چند تا نامزد ریاست هست واسه نایب رئیسی اول برای فصل بعد. حالا اون با اشاره به این ماجرا نوشته بازی پوتین مدرودوف با تاج و آجولو. یعنی این دوره بشه نایب رئیس و دوره بعد دوباره بیاد بشه رئیس. خب خدا رو شکر. کلن ما مسئولین بازیگوشی داریم دیگه. حالا اینا هم روش دیگه. اشکال نداره. آره. آره. فرسی جان شماره 999 رو اجازه بده با یه اصحار نظر ورزشی نوروزی تموم کنم. خیلی از ورزشی ها در گفتگوهای نوروزی مرد سالشون انتخاب کردن تو سایت های مختلف اومده. امیر قله‌نویی مربی سابق استقلال که الان هدایت تراکتور رو به عهده داره آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رو به عنوان مرد سال 94 انتخاب کرده در مورد چرایی انتخابش هم گفته خیلی شیک با زبان انگلیسی کامل از ایران دفاع کرد و با لباس مناسب و خیلی خوشتیپ آبروی ایران و ایرانی رو خرید بله البته خوبه ایشون متوجه شده که به زبان فارسی تو مجامعه بینال مللی نمیشه از ایران دفاع کرد بله حتما انگلیسی باشه ما تشکر میکنیم از ایشون و ممنونم ازت فریبورز غریب بات خدافزی میکنم تا فردا که دیگه یه ویژه برنامه برنامه هزاره با هستیم همه با هم دوره هم اینشالله تا فردا بربونت که بودی رود شد که پو از من که دو نبودی که بودی دلی بسته که نداشتم که داشتم با تو بکن نداشتم که داشتم برای بو تو بودن بزار کن نداشتم که داشتم بزار کن نداشتم که داشتم حالا مرافي سلام 21 و یک شب را ضمن وحشت از غلت شدن یک درخت 500 صابله در هفته منابع طبیعی در کشور. با مروری بر مهمترین نناوین قبری امروز و امشب آغاز می نماوین. درخواست بنیامین نتانیاهو برای تنبیه ایران به خاطر آزمایش های موشکی اخیر و توصیه کارشناسان به ایشان که به نظر ما شما کتبیه حالا چون ایپای تنبیه شدن باشه شما اولین نفری هستی که باید به دست تخیص کنی بیار ازار نظر یا الله مصباح با این مضمون که در حابل حابزر برای رهبری جانشین مناسبی بی نمیشه و سال فعالان عرصه رأی نیاوردن در انتخابات که حالا که تو خبرگان را ندادن پس خیلی علا خودت فشار نیاد <موسیقی> و انتخابد حابشمی رفت از کوفی خواندن مردم تهران توسط رسانه‌های تون توندرو بعد از شکست در انتخابات اخیر و ترس نابزران از اینکه بعد از کوفی خواندن مردم پروژهی برای ای کردن آنها در دسته اجراباب شد شا... مهمترین اناوین خبری که گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکار خوشاله هم محسن رضایی میرقاید فرماندهٔ سابق سپاه پاستاران و یکی از کاندیداهای همیشهای ریاست جمهوری در کشور در اینستاگرامش نوشت این جانب انقلابیم و به هولو قوهٔ از این رویه دست بر نخواهم داشت و هرگز به مردم خیانت نخواهم کرد خیانت به مردم از بزرگترین خیانت هاست پس از اینکه ایشان اعلام کرد از رویهش دست بر نخواهد داشت یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت این امر مایه دلگرمی همه است چرا که نگران بودیم نکند یک وقت آقای رضایی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری شرکت نکنند و یفصود نگرانی ها در حدی بود که جمعی از طرفداران ایشان از خمکنون با بیم از عدم شرکت ایشان در انتخابات کلی پیرا با عنوان رضایی کجایی دقیقا کجایی آماده کرده بودند تا در صورت عدم سبت نام وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 آن را به منظور ابراز دلتنگی برای این ذخیره نظام پخش نمایند پایان مشروع اخبار بله همکنون در خدمت آخرین کارشناس مشکل گشاوی برنامه برادر مشکل گشاوی بله و چای وزارت هستیم تا آخرین مشکلات ما را یا آخرین با گشایی کنن بله برادر مشکل گشاوی بفر بله بنده هم سلام بله. عرض میکنم و در خدمت هم بگم مشکل جان میگم با تعجب بله. اینکه پس فرد شب چهارشنبه سوریه بله بله. شما چه تدابیری برای این شب در نظر گرفتیم بله خب البته. ما در توسیه های بزرگان داریم که ندام بلی. با های مردم مخالفتی نداره و مردم میتونن شاد باشن دیگه اخی مشکل دیگه این انفجار که اتفاق میفته توی چرشنبه سوری خیلی زیاده بله. رعزیشه بله بله اینم یکی از مشکلات و آسیب های این در دستورات لازم برای کنترل این مسئله به ماموران گمنام و غیر گمنام نظام داده شدن هی چی مشکل من یه پیشنهاد بدم بشما؟ یه پیشنهاد. والا بله خوش میکنم. ما خیلی استقبال میکنیم در دروغات از پیشنهادهای مردمی بفرمایید. ببین به نظر من شما من... باید یکی معاونت سازماندهی چهارشنبه سوری تو وزارت تاسیس کنید بله. که ریشه ای با این مسئله مخالفت کنید دیگه. بسیار پیشنهاد و... جذابی است. فوقن من باید و مودرن مربوط مطرح کنم ان ان شاء الله تصمیم می دیگه برای مشکل بله. فقط ببین دفترش طبقه بالا باشه مشفق بله. خیابون دیگه خیلی هم تجملاتی نباشه من خیلی بله. علش نیستم من فقط منشیمو خودم میارم دیگه. ببخشید من خیلی متوجه نشدم شما الان با بنده صحبت کرده یا نه پس با شوهرمم حرف زدم. علی بله. آره با پیشنهاد شغلی دادی قبول کردم دیگه مشکل. من خب من شرایطی خاصی خودم ندارم برای قبولی هر شغل. نمیتونه. الو باند ساده شمارو رو الو, شما الو. الو. مش... مشکل نکنی کارو بام. من, با. من دارم بیکار میشم شب ایجینی نیاز به کار دارم. الو الو الو مشکل جان مادری مشکل. تو رو خدا مشکل. درود بر خامنهایی مرگ و اشتکار مشکل. بر الو بر. الو آبادش. الو مل مل مل مل الو من به صدای شعار شما را شنیدم به بله. چیز مشکل ببین بلو. توی تحسیصات محسیصات وزارت آدم نمیخوای الو. من دستباه چارم آرادی الان این صدای شما مفهوم نیست باید بابا بلو. الو, الو. تو روحت مشکل ببین بابا بله. بین خودم و خود بلو. جاسوس بلو. ماسیس نمیخوایی مشکل جاسوس ما. ما. خبری الو. پنجا میگیرم از فتنگرده دیگه خیلیشی ببین ال... ال... بیدی پنجا دولار دی خوبه مشکل بابا الو آ چرا شوهر می مشکل میگم من بیکارم مشت لا من چیکار کنم و دست این نه اون از سرنگ دیروز اینجوری پیشونین از این مد... مشکل جان جان مادرت مل مش... پچ موت هم میشم مشکل اصلا هر چی تو بگی؟ برق مشکل ببنده تو به من گوش بده مشکل. بابا یکی کار بده من من درم بیکار میشه مشکل مشکل مشکل مشکل مشکل یکی کار بده من من درم بیکار میشه خدا آی آی آی. آقای, میکروفان آقای میکروفان تلا آقای طلا آقای میکروفون چی رو شما اینجوری میکنین با خودتون من داشتم میرفتم زمانتون بعد رفتم براتون آبغند درست کردم بیاین بخورین دسته در نکنی چند تا غندن داختی بولی علا مشکل شما اینه آقای میکروفون طلا سه تا غندن داختن آنه من حساسم با توی آبغندم آه. پنج تا غند باشن علی آلا مهم نیست. هم مواظب باشین آب قندو اینجوری نمیخوران. <تصفيق> اخ. ای... ول ولینارو ول کن من دارم بدبخت میشم بولبول بیکار دارم میشم بول, بول. مهم نیست. من یه کوپن طلا والا یه کار دیگه پیدا میکنین. چی میگی بول. بول. تو ناراحت نیشی یعنی در بیکار میشیم هممون خب آخه آه. من که اینجا هر هیچ پولی نگرفتم همه ی پیش شماست پس خیلی مهم نیست بل من در حق تو خیلی بدی آخه. کردم آخه آقای میکروفون طلا میخواین تو دفتر تحقیقاتی خیلی. من دکتر آه. کار کنین جون من؟ بل راست میگی؟ خب باره که نه ببین معاونت چی ببین خالی دارین من دوست دارم معاون بشم بل بل بلو مواوین که نداریم اونجا همش تحقیقاتی همه تحقیق میکنن ببین بل من اصلا حوصله تحقیق محقی ندارم من میشم مواوین می شما از تحقیق خسته شدی من سرگرمتون بکنم خب فی... باشه حالا از فردا صبح بیاین یه کاریش میکنی هیه حلق جون میکروفون هم دارید بول بول اونجا یا بیارم بخورم نه م? بیارین میکروفونتون تو ما اونجا میکروفون ندارم ندارد. هر طب به دردم نمیخورم من تو چالی میکانیکی هم بخوام کار کنم باید این میکروفون کنارم باشه بل بل باشه یادت نه. باشه هر. بعد نهار چی میدین اونجا؟ من هر چیزی نمیخورم میکروفون تلا هنوز نیمده شروع کردین بذارین برسین باش. باشه باشه هر چی تو بگی دیگه غربونه تو با اون دکتر من. ببین یه چیزی فقط یه سوال منشی هم دارین اونجا جوال نه اتفاقا آه. شما خیلی خوبیم منشیگری من اتفاقا منتها فیلم من... باید جای حقوقهی که به من ندادیم اید. مجانی کار کنیم مشکل نداریم من منشی بشم اون جوال بولی چیزه حالا دی حالا بذار فکرم بکنم یعنی میام دیگه از فردم میام دیگه ایوان ای چی شمال میریم دست جمعی این آقایی میکنم سلاما ایده سر کاریم متاسفانه مرخصی نداریم بل بل من بدون مرخصی نروزی میمیرم بل بل نکنی کار با من داره خدا <تصفيق> ای چه بلایی داره سرم بیان باشه دیگه من برم بل بل. دکتر اومد تا فردا شبتون خود چه بلایی این در فراغ فرشید منافی گل نازنین می رود از فراغ تو خوب نه دل از دو دیدم ام دجل به دجل یم بیم چشم به چشم جو به جو همه از تهران به تو به چش ییدان رو خط همچو سواب فوتادم هم خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو دور دهان تنگ تو آرز ان بر این خطت قنچه به قنچه گل به گل لاله به ولاله بو به بو جم یادش به خیر وادن نه؟ ها یاد چی خاطر ما میخوای می خواد حال ندارم ها کلاغو نایمدن اصلا دل و دماغ ندارم حاج به سرت تفلام تندار ش <متشق> چرا ها میش <متشق> دیگه خب پس داریم شبیه هم میشیم یاباشباشای خدا بخواد ح هم یادش ب خیرره یاد چی بابا فنا ببینیم چی میگی؟ یا حس حس تو مای حس رفتی؟ آره بابا اصلا من زدون که میرفتم همه زن دنیا میمدم تچیل تچ رخصد می کلم دوباره شروع کرد ببین تو خالی نبندی میشه نه فکر کنم او بایرمه پیرزن میزنه ب و برم تو رو ببینه میگه. نه بابا. ای فکر کردم که علاقم بود بالاش گپشته گپشته بالا گپش ببین چیکار در باهاش بابا روانه داشتم میگفتم خب گفتی که تو زندون میبردن دلقک بازی داد میاد زندونیا سرگمش بدبخت بیچاره من اعتبار محبس بودم اسمم که میومد همه غلاف میکرد او من میشه این فیلم فیلما رو تو کجا میبینه میبوس ما تعریف میکنی خداییش ماهوانه دادا اینارو من میرفتم زندون ما که حبس تمام شده بود اصرار می کردن آزادشون نکنن میگفتن گفته می, می خوایم به خاطر این مرد بمونیم و حبسی بکشیم. عجب اسکولای بودن اونا. آرمیتا مات. ای جونا. آرمیتا چه آر دیگه؟ برا کنار برا کنار من برم چلو تر می بینه میره کوس. بابا آرمیتا چالاگه نمونه پار که خودم بازارجش کردم. ای بر مر سرت آنها. فکر کردن در دافی چیزیه کوشالا. اونا آدی و رو درخ نشست اونا اونا اونجی مثل این جود ماشینی از خدایش تا داغون بیا برای یه برقی چیزی بذارین عقلت برگرده سر جاشای وای نگاه کن آرمیتا داره این پا اون پا آره میکنه آره میگی بیا بریم با هم لامه بدا برخسیم نه نه یه چیزی شست بگم اونما آرمیتا جونم بیا بیا بیا پیشامو بی آمید اه چقدر میکنه؟ اه اه اه او او او او او اه چه فشاری ها؟ اه خودتو اه بکنه. اه اه تر این جلوش چی میکنی؟ اه خال چقدر سر این شلاقت بکنن؟ نگاه کن چند زنبیهی کلا؟ آره روبان آباشی! پیز بزن من پیز نمیبرد بامش! نزنیا نزنیا می توان این کارش برامو پیگام فرستاده! ببین بب بیشتر قبل باباش نزدیکی! شکه شکه شکه شکه خور بهش خور بهش آره ببینم بابا حالم دیگه آره. از این پارکی به هم میخوره دیگه تمام من پاما اینجا نمیذارم برم زیر دوش چند زد به همه اموراتم آرمیتا آه. آرمیتا جونم چی میخواستی به من بگی تو با این کارت آرمیتا تو دیگه آرمیتا. رد, آرمیتا. رد آرمیتا. کردی تمام تموم خدا خدافیر رو به بر میگردن باز کللاقا به یادم باز میادون کوچ باقا هنوز تو اون پوچ رو عقاغ کند بودیم مونده باقی هنوز تو اون پوچ رو نقاقی کند بودیم مونده باقی اقابل و من از یه دل دقل مسیر دل نبودم اما گه اوقل بودم من یکی دیگه از پایان های دوست داشتنی پایان دوران حبس و زندانه از کجا میدونم؟ حبس کشیدم نبای شاید چیه رفتن درست میکنین؟ داریم راجب پایان حرف میزنیم خب این یه بخشی شدی دیگه؟ ما درست حال نخوردیم دونه گندوم ولی دیم دست مردم که تو این فیلم ها ای زندانی ها همشه روی دیوار از این چوخت ها میکشن روزها رو میشمورن اینا دقیقا برای رسیدن به اون پایان شیرین و لحظه آزادی دارن لحظه شماری میکنن دیگه دقیقا همینه ما قریب حکم نداریم حکم روکاقت مال محکمه است. اصلیت حکم مال خداست که مامنش ریخته و گردیزون میکنیم واسه کسی که آزاد میشهد از این چاردیواری که همه ی دنیا چاردیواری حرام مرتضی علی یه مرد که واسه شرف و ناموسش دوازده سال و کشیده دانش بالاتر از این طوله که که سلامتی ناموس و رفیق و وطن سلامتی سکس زندونی و سرباز و دیکس سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوست داره سلامتی آزادی سلامتی زندونیای بیملاقاتی آخه آخه. همیشه اینجوری نیست مورد داشتیم طرف آزاد که می شده می بیرون زندگی سختره چون مثلا کار و شغل و خونه و زندگی اوننا نداشته بازی خلافی می‌کرده کرده برگت بر زندان لاغلی صفختفی بالا سرش باشه غذای بر خوردن داشته باشه دیگه شاید بعضیاتون اون کارتون دهکده حیوانات رو یادتون باشه گربه ها تو زندان به خوبی و خوشی زندگی می‌کردن اونجوری دیگه بعضی ظاهرا اون تو راحت دیگه چی بگیم ما والا؟ اگه بعد سالها ها دوران محکومیت داره تموم میشه ا انقدر تو زندون موندی کسا نمیدونی آزادی یعنی چی و بعدش چیکار باز کرد همه الان تیلیف بزن محسسه حفظاوران تا سه سوته برت گردونیم زندون جا به جای تو جای پرخطر و تابلو با درآمد توپ و دستگیری تصمیدیم شیف خاپی، زنبیل غاپی، موبایل خاپی و باقی خاپی با موتور و اسبا و موترگازی مروکی منسل و معرفی سوژاهای ثروتمند بالای 120 کیلو و کار بر آدم روبایی و باجگیری داداش فرمایش ببین یا بفای خودت بیا بارا تو صندوق عقبم یا منو بنده صندوق عقبت ببر تحویرم بده و ایجاد مزاحمت برای نوامیس گشت ارشاد مستقر در مکان‌های شلوغ در این انجام وظیفه. <تصفيق> ولان ایزا، قانون با شما جی، نیاز تبعچی بیام تو بنه. با مؤسسه حبسوران در اشرای وقت دوباره به زندان بازگشته و برای همیشه شر کابوس آزادی پیدا کردن کار مسکن و هزینه های معاش خلاس بشین دونام تو دو که دو دو هفته پیش و سود شدی پت تلف سود برگشتی؟ یا تلیف زدم به حبساوران دیگه نفهمیدم چی تو شد چشم باز کردم دیدم اینجا ایوه خوش شومدی به خونه خاکتی بازگشت سری و آسان به زندان فقط و فقط با مؤسسه ی حبصاوران. دلنگرانی ما از آدمی آدمیست که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشند خب دلنگرانی امروز تو چیه کامران؟ سلام تو برنامه یکی من... بنده با آخر دلنگرانی زیاد نیستم من اعتراض پخشی سکر من میخواید گرزون کنی بسیار من پول جمع کنی برد آرومده دیگه با شدم یه کویی همه بیکار میشیم همه با هم <صفح> <صفح> چه خبر ها از سینما از هنر <صفح> داره, امشب اجازه بده یکی دیگه از فیلم های اککرون رو معرفی کنم که از چهارشنبه <كتشن> همین هفته نمایششون شروع میشیم فیلم فیلم خشم و هیاه آخرین ساخته همان السییدی که برنده سی مواقه بلورین برای بهترین فیلم برداری شد. همیشه جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفت برای بهترین کارگردانی، بریم بخشی از صدای فیلمو بشنویم فعلا تا بعد. بشنویم. تو وارد کردی نداری، نداری ما عذی. دوستت بند کرده با طرفی با طرفی با طرفی میگم نیستم، بدن منو سرویس کرده. صبح چرا خانم؟ همین امشب میرم. تماشاچی تو سالن منتظرم. نمی‌دونم بابا زندگی هرکسی به خودش مربوطه. نه ظاهرا همین زندگی من به همه ربط داره فقط پشت می این کسی ندارد مزی پشت میم کسی نیدهتم برام کیو نویسسم؟ حنا چه؟ زشت رو تا ننفسی مدت معلوم الان مح خدا شاهده هربار خوه بله بخش از صدای فیلم خشم هی هوو ساخته هم عنوان سی رو شنیدیم بازیگراشکی هستن کام را تناز توایی نیده معمذاده رنا آزادی و رو به هناز جفری بازیگری اصلی فیلم اصلا فرشید شد بسیار خب از موسیقی چی داری برمون؟ معمولا تو اصلا ما خواننده برای ایدی اگه آلبوم به بازار ندن حداقل یه تک آهنگ حتما منتشر میکنم مهدی مقدمم امثال به عنوان ایدی تک آهنگ منتشر کرده به اسم ایجان که ریتم شیشا ریتم شیشا جو میده واسه که تو ایام شادی فقط باهوش بگی حالا بیا آقا حالا بیا پس حالا بیا, حالا بیا. ممنونم ازت تا فردا کامران عزیز که دوره دوره همیم خدافظ خدا نگهدار حالا بیا Allah. مثل توی شب میخواستم بگم که من آشق اکبر میکروفون تلا هستم مخصوصا وقتی که احساس خانندگی میکنه میخواد بخونه <تصفح> و آقا رشدی هم همینطور مخصوصا وقتی که چیزی که به نفعش نیزی دفعه دستشویش میگرف گفت ببخشید من برم یه. خیلی با مزد کلان همه کارات دوست داشتن یا با مزد و تشکر میکنم میدارم که هر جا هستین موفق باش بنده خیلی تشکر میکنم از شما خانم جان البته من واقعا مسانه من مشکل داره خدای نکرده قصد و قرضی در کار نیست بله پایان خوش فقط رو تو فیلم هاست. ما هرچی دیدیم تو زندگی پایان تلخ بوده نارو من نگفتم ما مهناز همکارم میگه یعنی هر بار ببینیش از هر چی بگی مهناز بدترین حالت ممکن رو برای تصور میکنه تا یکی هم بخواد بهت بگه این نیز بگذرد یا مثلا پایان شب سیه سپید است و اینا یه همی پره و از طرف طرف که چی میگی آدم بعد واقعی باشه پایان خوش یه راستش من که داشتم نگرانش می شدم کردم شاید افسردگی چیزی داره اینقدر منفی بافه یعنی اگه دیروز ندیده بودمش که داره شاد و شنگول دست در دست یا آقای شیک تو پاساش گلستان قدم میزنه و قهقه میزنه. شرکت کلا قیافه ی آدم بدبخت غمگین رو به خودش میگیره همین دیگه اگه ندیده بودمش دیروز در اون وضعیت هپی اندینگ فکر میکردم لازمه ای که بشینه باش حرف بزن حالش بهتر شه ازش که پرسیدم امروز چرا انقدر تناقض گفت ننجونت یادت نداده برای اینکه اتفاقای خوب زندگیت پایان خوش داشته باشن ازشون حرف نزن گفتم نه گفت مامان بزرگم اینو یادم داده که همیشه فقط از پایانای تلخ زندگیت بر بقیه بگو که چشمت نذنن وگرنه یعنی پایانای خوشت همه تلخ میشن بلو به حق حرفوی نزد و نشنیده. در کنار شما رسیدیم به انتهای 999مین رادیو پاسوردا. شاعر میگه همیشه در انتهای هر راه در واپسین های سفر خیره میمانم به پشت سر به پیچها گذرها به اوچ، اوچها فرودها و در مرور کولباری که از امیدها و خستگیها مالامال است به دنبال رویایی میگردم که مرا تا امروز تا این آخرین شیرین رسانده است و همیشه جز تصویری از لبخندی بیدریغ بر لبانت چیزی نمیابم 999 برنامه کنا رو هم خندیدیم و شاید برای خیلی ها که ما تو عالم اعداد از سکوی به پلی هزار میپریم و همونجا درنگ می کنیم چیز مهمی نباشه اما برای من و تو این درنگ خیلی ارزش داره اینو میدونیم که فارغ از همه ی رازها و خاطره هایی که این عددها بر اون بازگون میکنن هنوزم محتاج لبخندهای شمایی نمیدونی نمیدونی, نمیدونی. لبخند میدونم که دلت حضمان از این حس خبر داره، دارای <متصفيق> آخرین خواهش، یه کم با من مذاکره کن، سویی چونی نگودیره، بهمود دنیا مزیبه. از این احساس خبرداره برای آخرین خواهج یکم با من مدارا کن تو میتونی نگو دیره